السلام عليك يا بقية الله في أرزه السلام على المهدي الذي وعد الله عز وجل أن يملأ به الأرض أدلاً وقصطاً كما ملأت ظلماً وجوراً أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده و ونستغفره و ونؤمن و, و به و عليه و بالله من شرور انفسنا و من سیعات اعمالنا و نشد و الله يلاحي إلا الله وحده لا شريك له و ونسلم و على حبيبه و وحيرته في خلقه حافظ سره و مبلغ رسالاته بشير نعمته و نذیر نقمته سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين الهدات المهديين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الان إلى قیام يوم الدين آمین یا رب العالمین عباد الله وسیم و نفسی الله قال رسول الله صلى الله عليه و آله و من اتق الله آش قویه و صار فی بلاد عدویه آمنا بندگان خدا خودم به شما را به تقوای الهی سفارش میکنم رسول بزرگوار اسلام در این زیبا سخن هر هرکس تقوا پیشه کند و مسیر زندگیش را بر اساس تقوی قرار دهد این انسان استوار و قوی زندگی می کند و در ادامه می فرماید حتی اگر این انسان متقی در سرزمین دشمنانش قرار گیرد مسیر حرکت او بر احساس امنیت خواهد بود انسان با تقوا در همه جا حتی در سرزمین و بلاد دشمن احساس امنیت می کند در خوده اول موضوع سخن ما تی هفته های گذشته پیرامون فریزه مهم امر به معروف و نهی از منکر بود ما در چند خطبه گذشته سرفصل جدیدی را آغاز کردیم تحت عنوان معیارهای شناخت معروف و منکر گفته شد که به جای اینکه فهرستی بالا بلند از مسادیق معروف و منکر را مطرح کنیم قبل از اون لازم است به معیارهای شناخت معروف و منکر بپردازیم با چه ملاکها با چه زوابطی می توان تشخیص داد که این مورد که در جامعه ما اتفاق میافتد مصداق معروف است یا مصداق منکر ما معیارهایی را تا کنون بیان کردیم آخرین معیاری که مطرح شد این بود هر آنچه در جامعه رخ میدهد و زمین ساز تضعیف بنیه دین الهیست ما این را به عنوان معروف میشناسیم. و هرچه در جامعه رخ دهد و زمین ساز تضعیف دین الهیست ما این را به عنوان منکر می شنستیم. ما مواردی را در این زمینه مطرح کردیم گفتیم آشنایی با خود دین شناخت دین شناخت عمیق دین این به عنوان یکی از موارد تقلیت دین هست انسانها اگر با معارف الهی آشنا بشند با مبانی مکتب آشنا می شوند این زمینه می شود برای تقلیت بنیه های دین در جامعه نکته دومی که مطرح کردیم بحث رشد عقلی در جامعه بود ارتقاء فکر جامعه عقل جامعه تدبیر در یه جامعه هرچه جامعه از عقلانی رشد کنن به همون تناسب دینداری اونها دینداری قوی تری خواهد بود سست نیست بی اساس نیست با یک شبه سحنه دین را رها نمی کنند این هم نکته دوم نکته سومی که مطرح کردیم در جهت تقویت بنیه دینداری تلاش در جهت حاکمیت دین در جامعه بود تلاش کنیم علاوه بر زندگی فردیمون نظامی حاکم بشود ارزش های الهی در جامعه ما به خاطر حاکمیت دین حضور پیدا کند این هم عنوان مسئله دیگر اما در رابطه با عواملی که موجب تضعیف بنیه اعتقادی می شود و دینداران احساس تنهایی می کنند. جامعه احساس بیپناهی می کند یکی از مسائلی که دینداری را تو جامعه تضعیف می کند دنیا اگر جامعه به سمت دنیا گرائی حرکت کرد مسیر جامعه سمت سوی او دنیا شد انسان هایی که به سمت دنیا حرکت می کنند معمولاً بنیه های دینی اونها سوست و بیپایه است تعبیری امیر مؤمنان علی علیه السلام دارن تعبیر جالبی است امیر المؤمنین در این تعبیر نگاهشون این است که جامعه و افراد باید اصالت بدن به دینداری و دنیاگرایی در حاشی قرار بگیرد اما اگر اصالت داده شد به دنیاگرایی و دین در حاشی قرار گرفت دینداری تو جامعه تزعیف می شود تعبیر نورانی امیر المؤمنین خیلی عالی است اینجلت دینک تبعا لی دنیاک دینک و دنیاک و کنت من ال ف من ال و این جعلت دنیا کتب عن ل دینک، احراست دینک و دنیاک و كنت ف ال من ال خیلی تعبیر جالبی است. حضرت به اسالت دادن ب دین یا اسالت دادن به دنیا در این روایت اشاره می کند. می اگر دین را طبعی از دنیا قرار دادی پیرو به دنیا قرار دادی اول برای دنیا مطرح شد و بعد دین آدمی با این سرنوشت خروجیش این می شود احلکت دینه که و دنیا هم دین تو در معرض نابودی قرار می گیرد و هم دنیای تو چون این دنیایی به کام تو گوارا نخواهد آمد دنیای منهای دین یاد دنیایی که دین در حاشیه قرار گرفته باشه و کنت فالاخرته من الخاسرین اون روزی که به حساب کتاب ها رسیدگی می شود تو از زیانکاران کاران هستی خسرت دنیا و الاخره والکه هو الخسران المبین اما میفرماید به این جعلت دنیا که تبع ال اما اگر اصالت دادی به دین و دنیا تبع دین شد دنیا گرائی هاشیه شد اصل نشد اصالت به اون داده نشد احرست دین که و دنیا هم دین را و هم دنیا را احراز کرده و به دست آورده ای و سرانجام کار تو در آخرت این است که و کنت فل الاخرت من الفازین فردای قیامت هم که می شود جزء رستگاران خواهی بود در کلام دیگری امیر مؤمنان علی علیه السلام در همین راستا در مظمت دنیا گرائی سخن میگن توجه دارن بزرگواران بخش قابل توجهی از خطب نهج البلاغه نامه ها در نهج البلاغه به خاطر فضای اون روز جامعه امیر المؤمنین و احساسا تحدیدی که همیشه دنیا متوجه افراد می کند امیر در بخش قابل توجهی از خطب نحی البلاغ تشویق کرده جامعه را که سمت سو و حرکتشون به سمت آخرت و دینداری باشد در کلام دیگری امیر میفرماید حب المال یوهن الدین و بعد میفرماید و یفصد یقین مال پرستی که از مظاهر دنیا گرایی. مالپرستی که از مظاهر دنیای را در جامعه عشق و علاقه به مال و ثروت در جامعه می این دین را سست و ضعیف می کند یقین به خدا را یقین به قیامت را یقین به معاد را فاسد می کند بنابراین داریم این مسئله را مطرح می کنیم که چه چیز مایه تقویت دین می شود تا مصداق معروف قرار بگیرد چه چیز مایه تضعیف دین قرار می گیرد که مصداق منکر در جامعه قرار بگیرد دنیا از مسائلی که باعث تضعیف دین و بنیانهای دین می شود و در نتیجه هر قدمی که به سمت دنیا در جامعه بشود البته من همینجا این نکته را یادآوری کنم اسلام با دنیا داشتن افراد با مال داشتن افراد مخالف نیست عمده هدف دنیاگرایی است دنیاگرایی است که دین منزلی شود و دین در حاشیه قرار بگیرد ان الله یامر بالعدل والاحسان و ایتاء القرب عن الفحشاء والمنكر والبغي یا ائذکم لعلکم تذکرون پروردگار ما را بیاموز به اسلام و اسلامیان عزت انایت بفرما در فرج مولایمان حضرت بقیت الله لعظم تعجیل بفرما روح بلند رهبر شهیدمون عالی است اعلا بگردان به مراجع گذشته ما پروردگار رحمت واسعت را شامل بگردان به رهبر موززم انقلابمون و مراجع بزرگوار تقلید من عزت، سلامت، طول عمر با برکت، رحمت بفرما. به خانواده های مکرم شهیدانمان صبر و اش کرامت بفرما. توطئه دشمنانمون را به خودشون برگردان. به رزمندگان و مدافعان حرم نصرت و پیروزی نهایی عنایت بفرما. فروردگارا به جوانان ما غیرت دینی و آشنایی با مکتب انایت بفرما باران رحمتت را شامل حال امت اسلامی من بگردان انا احسن الحدیث و ابلغ كتاب کتاب الله العزیز عوض بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم انا اعطینا الكوثر. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَنْحَرْ إِنَّا شَانِعَكَ هُوَ الْأَبْتَرْ صَدَقَ الله الْأَلِيُّ الْأَذِيمُ السلام عليك يا بنت رسول الله السلام عليك يا بنت ولي الله السلام عليك يا فاتمة يا بنت موسى بن جعفر اشعي لنا في الجنة فإن لك عند الله شعنا من الشعن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بار الخلائق اجمعين ونصلي ونسلم على حبيبه ونجيبه سيدنا ونبينا حبيب اله العالمين ابي القاسم محمد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 وعلى محمد بن علی الباقر وعلى جعفر بن محمد الصادق وعلى موسى بن جعفر الكاظم وعلى علي بن موسى الرضا المرتزا وعلى محمد بن علی الجباد وعلى علی بن محمد الحاضي وعلى الحسن بن علی الذكی العسکری وعلى الحجة القائم المهدي حججك على عبادك عبادک و امنائی که فی بهم نتولا و من اعدائهم إلى الى يوم القیامة عباد الله اوسیکم و نفسی الله قال مولانا امیر المؤمنین إن لأهل التقوا علامات يعرفون بها صدق الحدیث و اداء الامانه و وفاء به عهد بندگان خدا خودم به شما را به تقوای الهی سفارش می کنم امیر مؤمنان در این جمله و کلمات در رابطه با تقوا می که که های قائمین به وسیله این علائم شناخته می شوند اولین علامت تقوا پیشگان راستگویی است آدم با تقوا دروغ نمیگوید نشانه دوم انسان های با تقوا امانت داری است انسان با تقوا خیانت نمی کند نشانه سوم انسان های با تقوا وفای به عهد است انسان های با تقوا عهد شکنی نمی کنند امیدواریم که خدای متعال به همه ما انایت کند برخوردار از اوصاف تقوا پیشگان باشیم در خطبه دوم به بیان مناسبت ها و نکاتی چند اشاره می کنم اولین مناسبت که مناسبت امروز است روز 28 هشتمه ماه سفر روز رهلت جانگداز خاتم انبیا محمد مصطفی و همچنین روز شهادت سبت اکبر وجود مقدس امام مشتباه علیه السلاط و السلام است در رابطه با نبی گرامی اسلام سخن برای گفتن فراوان است روزها و هفته ها و ماها و سالها درباره باره پیانبری که بیست و سه سال از دوران عمر پربرکتش را در راه هدایت جامعه و غمخاری برای جامعه و الفت و مهربانی برای جامعه گذاشت اولی نقش مهم نبی گرامی اسلام بر اساس آیات قرآنی که بهترین معرف پیغمبر آیات قرآنی است ما لازم نیست جای دیگری سراغ بگیریم خدای پیامبر پیامبر را به بهترین وجه به جامعه بشری نه تنها به مسلمانان معرفی کرده است در یک جا میفرماید یا ای نبی اینا ارسلناکا شاهدن و مبشرن و ندیرن و داعین الی الله باذن هی و سراوجن منیرا چه اوصاف زیبایی در رابطه با پیامبر پیامبر ما چرا به عنوان رسول منفرستادیم فرستادیم که شاهد و گواه امت باشیم چرا فرستادیم که جنبه مبشر بودن و منظر بودن داشته باشی ما تو را فرستادیم که داییا علی الله باشی مردم را به خدا دعوت کنی نقش هدایتگری داشته باشی ما تو را به عنوان سراج و چراغ پرفروغ فرستادیم که هدایتگر باشی و مردم در پرتو شعاع نور تو به هدایت برسند و از ظلمت و گمراهی نجات پیدا کنند در جای دیگری هم میفرماید اساساً حیات یک جامعه به این بستگی دارد که دعوت خدا و رسول خدا را بپذیرند یا آمنوا لله وللرسول اذا یعنی اگر جامعه میخواهد حالت میت بودن نداشته باشد روح حیات به زنده بودن در کالبد جامعه باشد استجیبو لله و للرسول اذا دعاكم لما یهیكم و آنگاه که در وصف پیغمبر نسبت به امت خدای متعال سخن میگوید تعبیرات است اگر چیزی شما را ناراحت میکند پیغمبر هم ناراحت میشود پیغمبر حریص بر شماست حریص بر سعادت شماست حریص بر هدایت شماست، غمخوار شماست. چقدر تعبیر جالبی است. لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما انتم حريص عليكم بالمؤمنين و رحيم. چه توصیفات زیبایی از نبی گرامی اسلام خدای متعال مطرح می‌کند. گفتم قرآن و خدای متعال بهترین معرف برای پیغمبره. این پیغمبر به تعبیر قرآن میفرماید عزیز اولا جاکم جا رسول من انفسکم از جنس خود شماست ما فرشته نفرستادیم ما بشر فرستادیم به عنوان یانبر از جنس شماست تا عواطف شما را درک کند احساسات شما را درک کند شراعت شما را درک کند بهانه نگیرید که این نمیتواند برای ما الگو باشد چون از جنس ما نیست از جنس شماست تا رفتار او و مشی او جنبه الگویی برای جامعه بشری داشته باشد عزیز علیه ما انتم چقدر تعبیر جالبی است ناراحتی شما ناراحتی اوست اگر شما به زحمت بیافتید او احساس ناراحتی و نگرانی می میکند حریص علیکم در هدایت شما در سعادت شما و عاقبت بخیری شما او حریس است نگران آینده شماست چه می شود بعضی از جاها خدای متعال به پیغمبر می گه چرا خود تو اینقدر به زحمت می اندازی برای امت بالمؤمنین و رحیم در مقابل مؤمنان رؤوف و رحیم و مهربان است دشمنی مردم و اون زمان تبدیل به دوستی شد تبدیل به مهربانی شد کسانی که به ثروت و فرزند و قبیله می نازیدند در کنار پیغمبر در جبهه جهاد قرار گرفتند این حرکتی بود که نبی گرامی اسلام در فضای جامعه اون روز ایجاد کرد مناسبت دومی که ارش کردم شهادت امام مجتبی علیه السلام است شخصیتی که در دامن رسول گرامی اسلام در دامن امیرالمومنین در دامن فاطمه زهرا سلام الله علیكم اجمعین تربیت شده رشد پیدا کرده تعبیر پیغمبر درباره امام مشتبه دارد که من تعبیر را کمتر جایی دیدم میفرماید لو کان العقل رجلا لکان الحسن تعبیر حضرت این است اگر قرار بود عقل به صورت یک انسانی مجسم بشود همانا به صورت امام مشتبه مجسم میشد تمام قامت امام و مشتباه عقل، تدبیر و درایت بود. او اسوه است برای همه افراد چه در بعد فردی و چه در بود اجتماعی، سیره عبادی او 20 بار با پای پیاده یا 25 بار با پای پیاده امام مشتبا علیه الصلا و السلام از مدینه به مکه رفتند. در حلم و بردباری نمونه دوران است دشمنان به او گستاخی میکنند می میدهند ولی چون کوه استوار ایستاده سخن نمیگوید بلکه با محبت و مهربانی دل دشمن را هم نرم میکند این عظمت امام و است که میتونه الگو برای همه ما باشد لذا حضرت در جمله فرمود صاحب ناس مثل ما تحب یه بود که به با مردم اونچنان رفتار کن که دوست میداری دیگران هم با تو اونگونه رفتار کنند و عرض کردم شهادت وجود مقدس آقا علی ابن موسر هم در روز آخر ماه سفر داریم محاصر سه خلیفه عباسی هارون و امین و مصعب، موسب جعفر موقعی که فردان امام علی ابن مسرزا را معرفی می کند با چه جمله زیبایی حدا اخوکم علی ابن موسا آلم و آلم محمد فسالوه ان ادیانکم وحفظو ما یقولو لكم. سؤالاتتون از این عالم بپرسید حفظ کنید قدر شناسی کنید قدر آقا علی ابن را بدانید آقا در سخنی فرمود من جلس مجلسن یه یافیه امرنا لم یموت قلبه یومه یموت القلوب اگر انسان در میلسی ذکر ما اهل بیت مکتب ما اهل بیت مطرح شود آدمی که تو این مجلس نشسته لم یمت قلبهو یوم یموت القلوب اون روزی که دلها می میرد. اون روزی که انسانها احساس بیپناهی میکنند، یوم لا ینفع و ولا بنون الا من به قلب سلیم قلب این انسانی که در مجلسی قرار گرفته که از ما اهل بیت سخن گفته شده این دل اون روز نمی می میرد. امروز روز رحلت پیغمبر امروز روز شهادت ست اکبر و آخر ماه سفر روز شهادت امام رعوف علی ابن موسر من این مناسبت خزننگیز را غمنگیز را خدمت شما بزرگواران ارادتمندان اهل بیت تسلیت ارز می کنم امروز جهان اسلام اشک می ریزد جهان اسلام در فراق رسول الله اشک می ریزد امروز جهان اسلام در فراق امام مجتبی اشک می ریزد یا رسول الله نمی دانم به همین جمله من بسنده کنم ذکر پدر کنم ذکر پسر هم شده است یا رسول الله نمی دانم آخرین لحظاتی که سر تو بر دامن علی بود چه گذشت پیغمبر امیر المومنین را صدا زد امیر آمد صدیقی تاهره فاطمه زهره آمد فاطمه به کناری نشسته عشق می ریزد، گریه میکنه حسن و حسین از در وارد شدن خودشون رو روی سینه پیغمبر انداختن معمولاً رعایت حال محتظر می شود حتی دکمه های پیرهن محتظر را باز می کند اما پیغمبر به علی و زهرا فرمود بگذارید حسنم حسینم را ببویم قادتا وجود مقدس رسول الله آینده حسنین را در نظر داشت اون لحظه ای که جنازه امام مشتبه را تیرواران کردن حالات حسین را در نظر داشت، در گودی قتلگاه زینب بیاد و بگه آیا تو حسین زینبی؟ خادتاً وجود مقدس رسول الله تک تک فرزندانش و مصیبتایی که بر فرزندانش گذشته به ذهنش میاد وجود مقدس آقا علی ابن مصرزا در غربت باید جان بدهد عزیزش امام جواد بر بالین سرش حاضر شود سر او را به دامن بگیرد اینجا یک جا بود که پسر سر پدر را به دامن گرفت و تو کربلا پدر سر پسر را به دامن گرفت سر علی را لا از حک الله ده این زهکت، و آل احمد مظلومون قد رو مناسبت دیگری که من باید به عن اشاره کنم در راستای عشق و ارادة مردم خوب ما به اهل بیت پیاده روی است که در خطبه گذشته اشاره مختصری داشتم انصافاً نماد پرشکوه عظمت اسلام و مسلمانان است بزرگترین به بشریت ثبت شد چقدر همدلی، چقدر مهربانی، چقدر صفا همه اون چرا که شما در روایات دیده بودید بر بالای منابر، از بالای منابر شنیده بودید که خلخخوی یک جامعه دینی و جامعه اسلامی چه شکلیست؟ چگونه نسبت به یک دیگر مهربانان در این پیاده روی عربین انسان با چشم خودش تجسم این وحدت و همدلی و همراهی را با تمام وجود احساس می کند من از همه کسانی که موکب داشتن موکبهای متعدد موکب حرم کریمه اهل بیت که در اونجا باعث عزت و آبرو شد برای قوم و قمیها و برای ایران موکب آقا علی ابن و دهها و صدها ها موکب دیگر از همه عزیزان و بزرگواران تشکر می کنن. از نیروهای نظامیمون از نیروهای انتظامیمون از مسئولینمون تشکر میکنم از دولت عراق ملت عراق از هشت و شعبی عراق تشکر و تقدیر میکنم به خاطر تأمین امنیت و همدلی و همراهی مناسبت دیگری که باید به آن اشاره کنم که این روزها قلوب ملت ما را جلیه دار کرد حادثه تلخ زلزله غرب کشور به خصوص کرمانشاه بود خیلی ها ازادار شدند. بیش از چار و, و دو نفر جان باختند در این حادثه بیش از 8000 هزار نفر مجروح و مصدوم شدند من همینجا لازم می که سمیمانه از اعماق دل از طرف خودم به شما مردم خوب و عزیز و ولایت مدار شهر کریمه اهل بیت این مصیبت جانکاه را به همه عزیزان بازماندگان تسلیت عرض کنم برای جان باختگان غفران و رحمت الهی و برای مصدومان و مجروحان شفای عاجل تقاضا کنم مردم خیلی زیبا عمل کردند گویی از اوقات یک فرد یک پتو با خودش امرا داشت و یه دست نوشته ای که اون چه در توان من بوده این است و همین را تقدیم زلزله زدگان کرد تجسم و تجلی عشق علاقه همدوستی نودوستی دوستی اینها صفاهایی است که در فضای جامعه ما وجود دارد ما در این جریان مصیبت‌های غنباری بر مردممون دیدیم وارد شد خیلی از ساختمانها و خانه ها تخریب شد انبال مردم تلف شد دامهای اونها از بین رفت و تلف شد من همینجا تقاضا میکنم. گرچه به همدلله از سوی قوم کاروانهای تا کنون شدند شدن من در تماس بودم با امام جمعه بزرگوار سرپل زهاب خیلی تقدیر و تشکر داشتند. از همت والای مردم از همت مردم قم خیلی تقدیر و تشکر می‌کردند اما باز مردم فاز اول تمام شده فاز امداد و نجات تمام شده فاز دوم که مهمترین کار برای این عزیزان باید انجام بگیره تامین یک جایگاهی و سرپناهی برای عزیزان خبر دارید بعضی از اینا دیشب را در هوای سرد زیر صفر و صفر گذارندن و بعضی چادری و پناهگاهی نداشتند حمت دینی ما ایجاب می کند. با هر مقدار توانی که داریم بیاری این عزیزان بشتابیم اینها را تنها نگذاریم و قوم باید در این جهت نمونه باشد موکبهایی من به کل ملت ایران عرض می‌کنم، کنم هایی که اون همه خدمت به در ایام عربین کردند، همین موکبها با ساز و و با امکانات بیشتر بسیج بشوند برای خدمت به زلزل زدگان عزیزمون البسه نیاز دارن چادر نیاز دارن پتون نیاز دارن غذا نیاز دارن نایلون برای جلوگیری از بارندگی همین روزه ها صحبت از بارندگی و سرما و امثال زالک هست انشاءالله خدای متعال به همه شما عزت بیشتر عنایت کند هفته بسیج را داریم هفته بسیج هفته بسیار عزیزیست برای تمام ملت ما من ای که میتونم راجب بسیج بگم بسیج شجره است. حقیقتاً که مایه ازدت انقلاب اسلامیست بسیج مظهر وحدت مقدس و آگاهی و مجاهدت ملت ماست اینشالله در همه مراسمی که بسیج و بسیجیان دارن اینشالله حضور پیدا کنید امام ابتکار جالبی نشان دادند. فرهنگ جامعه ما باید فرهنگ بسیجی بشود هفته وقت را در پیش داریم مردم ما به عنوان یک سنت حسن سال هاست نسبت به وقت احتمام داشتند. بزرگوارانی که مسئولیت وقف را عهده دارن سازمان اوقاف خدمات بزرگی را انجام دادن انشالله سعی کنیم ما هم سهیم باشیم در ایجاد موقوفات جدید که علاوه بر مصارف آن نسبت به ازاداری ابی عبدالله حوزه های علمی، مراکز علمی، مراکز فرهنگی حتی وقف برای این گونه مواردی که کشور دچار بلایای طبیعی می شود برای این گونه موارد وقت کنند برای بلایای طبیعی و مشکلاتی که در کشور به وجود میاد و من یک نکته راجع لبنان هم عرض بکنم که این روزها خبرهای داغ خبر استعفای صد حریری نخست لبنان بود کار زشتی که در هیچ جای دنیا اتفاق نمی افتد کشور دیگری نخست وزیر کشوری را بازداشت کند نگه بدارد وادار کند او را به استفاق و گفتن علیه کشور دیگر و مجموعه دیگر سوال می چرا این کار زشت و نسنجیده را سعودی ها انجام دادن که رئیس جمهور لبنان گفت اقدام و حرکتی خصمانه توسط سعودی ها نسبت به کشور ما انجام گرفته است واقعیت این است که اون روزی که سعد حریری نخست وزیری را پذیرفت سعودی ها ازش که توقع داشتن اون توقع برآورده نشده توقع سعودی ها این بود که با تشکیل دولت در لبنان و روی کار آمدن رئیس جمهور و نخستوزیر الله در انزوا قرار بگیرد الله از صحنه لبنان به کنار برود اما برخلاف و انتظارشون حزب هم در دولت زیدا در جای دیگر ایجاد کردند زیبا درشت یکی از مسئولین آمریکایی تعبیر داشت ما پیروزی را قطعی حساب کرده بودیم در سوریه اما اون روزی که حزب در کنار دیگران قرار گرفت و وارد صحنه شد معادله علیه ما تمام شد و به هم خورد و در نتیجه ما شکست خوردیم. حزب الله با این عظمت وارد شده. ولذا به نظر من اینکه صدر حریری را مؤاخذه میکنن، محاکمه میکنن، بازداشت خانگی میکنن و به او اجازه نمیدن، شاید به سعودی ها در مقابل این همه پول امکاناتی که خرج کرده بشود حق داد. آخر تقدیر و تشکر میکنم از نیروهای انتظامیمون در استان قم. یکی دو اقدام عملیاتی بسیار ارزشمند انجام دادن که قادتاً در بخش اخبار شنیده من از فرموندهی محترم و نیروهای عزیز و قهرمان نیروی انتظامی تقدیر رو تشکر می کنم ربنا آتنات دنیا حسنه و فی حسنه و فی نار پروردگار را بیامرز به اسلام و اسلامیان عزت انعایت بفرما. روح بلند رهبر فقیدمون عالیس اعلی بگردان به مقام معظم رهبر عزیز انقلابمون عزت سلامت برحمت بفرما به فقهای ما به مراجع ما سلامت عنایت بفرما و رزمندگان ما پیروزی انایت بفرما به, انا به های شهدای ما صبر و عجل کرامت بفرما